رحمان رحیم به نام خداوند بخشنده تا عرض سلام و دود فروان دارم خدمت شما بینندگان بزرگوار و ارجمند هم دلسپاس داریم خداوند یکتا رو که ما توفیق داد تا بتونیم در خدمت شما عزیزان دوست داشتنی باشیم با یکی دیگه از سری برنامه‌های آینه سلامتی این هفته هفته پیش که گذشت برنامه خیلی سعی کردیم بیشتر با تلفن‌های شما بزرگواران برسیم و این نتیجه‌اش باعث شد که خیلی زیادی داشته باشیم شما عزیزان و من فقط این شرمدگی برای ما مونده که نمیتونیمتوانم تمام ها شما از آن پاسخو باشیم همینطور که هفته های قبل بود حالا تصمیم که دوستان من گرفتن سعی کردیم ترک هر برنامه این برنامه هفته گذشته بودن این برنامه به صورت رندوم و به صورت ناخودآگاه من انتخاب می کنمم حداقل 80 تا تا 10 داشتش رو سی می کنیم افه داشته باشیم و برگردیم بهبال برد برنامه که اون پاسخی تلفن های شما بزرگ هست. هفته پیش یکی از راهکارهای جدیدمون رو دوستانمون ارائه کردن ایمیل ما بود که خب لطف داشتید یکی از دوستان حتی ما ایمیل زده بود 6 صفحه ایمیل زده بود که قبل برنامه شما تا حاجا قرار شد بعد برنامه بدین پاسخیشون رو بدن و ما براتون ارسال کنیم چند تا از دوستان هم هم دیگه برنامه کار دادن که ایمیل نداریم طور خود پاسخ ما در برنامه بدید ان که این ارتباط شما با این تکنولوژی حتماً و این باغرار بشه بتونین ایمیل رو درست کنید و از طریق ایمیل در ارتباط باشین چون نمیشه همه این پاسخ‌ها داخل این 90 دقیقه‌ای که ما در خدمت شما عزادان هست بدیم. مع عبد خدمت اون دسته عزادانی که از این هفته مهمان برنامه ما هستن، در کنار ما هستن و یار ما قرار باشن، عرض می‌کنم که آیین سلامتی، برنامه‌ی سلامتی از استودیوی مشهد شبکه‌ی جهانی ولایت برای شما عزادان آماده میشه و این برنامه قصد داره که بر اساس آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهارهم سلام بتونه مشکلات شما بزرگواران رو چه مشکلات جسمی چه مشکلات روحی رو از بود تپه هستی برعکس کنه و بر راهلهای رو به اون ایرایت مهمان عزیزی داریم حضرت آیت الله جناب آقای زیایی دکترای فقه و اصول کارشناس ارشد و بس هر ماه تماتخص هست که همون میشناسیمشون هجوم عرض سلام دارم خیلی خوشودید تن سلامت باشید به خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت سلام عرض می‌کنم ان شاءالله همه با عافیت امنیت باشند تا خدمت شما. خیلی خدا رحم جمعه برای ما حفظ کنه. سلامت باشید. خب همونطوری که برنامه‌های ما رو پیگیر هستید و با این ارسال برنامکای مهر، در واقع الان یه تعداد از برنامکارهایی که جدا کردن فقط مثلا 100 تاشو، ای که اولش بود بالا قبل برنامه برای من تنستون بگیرن جدا شده، برای من ارسال کرد. یکی از نکاتی که من الان تو برنامکار می‌خونم گویا غلط اشتباه میشه چون موضوع کانون مهریه یک چند از استدیو مشهد برای شما از آماده میشه و پخش میشه. کمی نزدیک به برنامه‌های سلامتیم. یه بزرگواری بکنید از این به بعد ابتدای فرمت میخواین ارسال کنین یا آین سلامتی یا سلامتی نقطه بعد ادامه متنتون رو بذارید که اینو برای دوستای ما راحت باشه و بتونین فرمتاتون رو تفکیک کنید اگر هم مثل خیلی از دوستاتون که من اینجا می دیدم انتهای پرمک ایمیل خودتون رو بذارید این پاسخ شما براتون ایمیل میشه ایمیل مون رو من حتماً بهتون نگفتم مشهد adsignvelayattv.com مشهد adsignvelayattv دات شماره هم که قبل هف ۵۹ ده و ما 20 دقیقه قی آاج هستیم با پاسخ کوی شما دم و بعد اون سراغ تلفن ها فانت 11ده یک فراموش قبل برنامه می و حالا گفتم چون تفتیق انجام نشده بود درشت برشا آینه کانون مهرو هم چند تا پرمکاشون موزشته بودن یکی از سالایی که خیلی زیاد بود داخل پرمکا و من دیگه گفتم اول اینو عنوان کنم مبحث عادت ماهانه خانم ها بود بلد. چند نفری تحکیل داشتن گفتم به علت مشکلت بریم حالا بلد. به تحکیل انداختن این موضوع بلد. باعث میشه که خوروزیشون و مدت عادتشون ده روز باشه خیلی دوستان یه برنامه یه روش شما بدید بلد. که این رو بتونن تنظیم کنن دیگه تنظیم داشته به شما از شبت که علت اصلی قاعدگی های نامنظم و یا طولانی شدن قاعدگی و عادت ماهیانه سهری نخوردن صبحانی نخوردن شام نخوردن یا سوء تغذیه داشتن یا خونی های شدید و متوسط داشتن به هر کدام از اقسامش فقر آهن بیشتر شایه الان در دنیا ها هست در کشورمون هم هست و علاوه بر این که یک بخش وسیعشون از کمخونی فقر آهن رنج میبرن نیمی از این قسمت مربوط به زنان و دختران است. اینا از کمخونی فقر آهن رنج کم کمردر داره، درد زینافی داره، درد پهلو دارن حال اگر استرس نگرانی مستمر باشه دلشوره و دلواپسی باشه، استراب و دلهوره باشه سوی تغذیه ام بخوره صبونش شام نخوره مکررن این اینو تکرار کنه این عادت نامنظمش بیشتر میشه استحاضه شویش بیشتر میشه حالا برای قاعدگیش منظم بشه درزم شیر افضان باشه اگر مادریه که کودک شیر خورم داره اینجا چای رازیانه یه قاشق چای خوری رازیانه میزه تو استکام مش اگ جوش میزه 5 دقیقه صبر میکنه بعد میخوره هر روز عصرانه یه استکان چای رازیانه هم قاعدگی منظم میشه هم شیر افساس تو بحث فلفل سفید دانه فلفل سفید این هم قاعدگی رو منظم میکنه فلفل سفید دارین دارین در بدر چون فلفل سیاه دارین فلفل قرمز دارین فلفل هم داریم که بعضی از متخصصینه گیاهی که 45 سال کار تجربی دارن مثل احمد حاجی شریفی معروف به عطار اسفانی در کتاب اسرار گیاهان دارویی تو قسمت فلفل نگاه کنم دانه فلفل سفید قاعدگی و منظم دستم. دستم. پس با مصرف این ها چایی رازیان هر برای خانوما چند خوبی داره یکی قاعدگی منظم میشه، یکی هورمون زنانه استروژن بالا میره. سومی که شیر افزاس، شیر در کشتان مادر فعال میشه، شیر برای نوزادش کم نمیشه. خیلی ممنون حالا قبل از اینکه که من پیمکی بعدی رو بخونم، این تذکر رو بدم که دوستان عزیز که همون تماس میگیرن خطا مشغول من مم میبینم. لطفاً که ساعت هفت تماس بگیرم. ما متوجه تماسشون هستیم ساعت هفت. خصوصی کو تلفنمون اونجا شروع میشه و نکته ای که حتما برا شما از دنیاتون باشه فقط شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 7:30 هاجاوا شریک هستم میتونید پاسخ خود شما ازون باشن چهارشنبه ها که برنامه زنده داریم در خدمتتون هستیم شنبه ها فقط ساعت 7:30 برنامه پخش نمیشه میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو بپرسید بعد بزرگوارانه کنید روزهای دیگه ساعت های دیگه تلفن شریک رو مشغول نکنید چون برنامهای دیگه تجربه میشه و لازم دارن دوستانمون این صدها ازم از وقت برنامه نگیرم، بزرگواری، پمگ 918 68 15. باسلام بنده حدود چهار هفته پیش خدمت آیت الله زیایی در خصوص ناراحتی که و روان سال کردم. که متأسفانه در حین جواب برنامه تلفن حالا برنامه زنده قطع شده حالا تکر هم نداشتم، حالا اطاله گیرنده شون به مشکل خورده یا ما تو ارسال تصویر مشکل داشتیم. در خصوص عصا و روان چند تا فرمی که دیگه هم داریم ما که حالا سوالشون اینه چی کار کنیم آرومتر باشیم نه نه نه نه نه کسانی که زعفه اعصاب خفیف یا متوسط یا شدید دارن و این زعفه اصابشون توامه با افسردگی و یا استرابه اینها چند چیز برایشون بد یکی چیزهای ترش مثل آب لیمو ترش لیمو امانی گوجه سبز لواشت وسیجات بندری لیتیا اینا براشون سمه نباید بخورن دوم چیزایی که تند و تیزه مثل فلفل سس فلفل سس املی اینا براشون خوب نیست سوم اسانس‌های شیمیایی چهارم فست فودها و غذای مونده غذای صنعتی غذای مونده این تشدید میکنه خرابی ها حالا مخصوصا این ستای اولش خیلی باید مواظب باشن مصرف نکن. چه چیزایی داروشونه داروشون یکی قطره هایپیران که از گل راعی که چای کوهی خارجی ها میگن هو فاریخون از رسته داروهای دپرسان ایرانیای خودمون چای کوهی میگن چای پشمکی میگن به از این مرکز تحقیقاتم که داروشه زده قطعه هایپیرام خودت اون یک چیزی هست مثل پنبه من بله بله باید فله ای نباشه تاریخ مصرفش مشخص باشه چون داروهای گیاهی غالبا تا 6 ماه عمر مفیدشونه بیشتر گاهی کم خاصیت میشه گاهی اصلا خاصیت سنمی پیدا نمون ازا تاریخ مصرفش معلوم باشه این مثلا مال زعیف متوسط 25 قطره تا 35 قطر صبح میخوره قطره داروخونه ها داره؟ در بره همه داروخونه های کشور داره قطره های پیران 25 قطر صبح بره بره تا 35 قطره رنج یا دامنه مصرفش 25 تا 35 کودکان زیر دو سال زنان حامله و زنان بچه شیرده رو نمیدهیم نه این موارد احتیاط ممنوع در غیر اینها به مقدار سن یک قطره اضافه میشه. اما پونزه سال به بعد قطره. کم کم باید به سی و قطره برسنن. یه باره که مصرف زیاد نکنن. چند خوبی داره؟ یکیش تقویت اعصابه. اعصابه کسی که زدهش خفیف یا متوسط. یکی دیگه آقا از خوبیاش که چون تو زنها شایعه سردردهای ناشی از قاعدگی دردناک بحث دیسمنوره خب اینم براشون خوبه مسکنه یه جوریه بله بله هم مسکنه هم به اصطلاح پزشکی میگن دارو نما که نه مسکن میشه نه دارو یه حد فاصله یکی دیگه از خوبیاش سردردهای میگرنی که درمان می در یکی دیگه از خوبیاش افسردگی عادیه که سرماخوردگه روانی درمان درست حالا اگر کسی کلیک روده اسپاسم عصبی روده داشته باشه در اصسلام میگن سندروم روده تحریک پذیر حالا اینجا این مریضا دو جوره گاهی همش شکمش دستی بزرگش شل کار میکنه حالت اسخالی درست برای این نه برای این این دارو خوب نیست خوب. اما اگر کلیت عصبی رودش ها جوا کلیک عصبی رودش هاجا به صورت سفت بود به بخی لفظم بد میشه مثل مثلا مدفوع گسفن بود تیکه تیکه بود خشک بود دلست. اینجا اگر همین 25 قطره یا 35 قطره با یه لیوان آب بخوره کلی که رودشم سندرم روده تحریک سازیش هم خوب میشه خیلی ممنونم حالا می بن بردیم برید اتاق فرمانی میان برنامه امام حاضر کردم میام برنامه با هم میبینید گردیم دوباره در صدیم مشهد ولادتات شما این داروی ضعیفه گفتن تا ان شاء الله قوی است با دایو درس زندگی از منتبه قران چه نو و در ده حتینوکته ها این دفتر و دیوان شنوم کمگو حدیث این و آن حرف از زب جانان شنوم و از نامه خیول بشه برنامه یزان شنوم برنامه ایک از لطفه بر بندگان شده برنامه ایک از لطفه هم با و با هر بندگام افتاد شده بزدای او بر زندگی ای خاطه قرآن را بخوان هر دف و دیوان بنه این گنج عرفان را بخوان بر او علم رو بر یاد یزدان را بخوان پانون فطرت را نگر منشور ایمان را بخوان شزبان گو گو گای توپور، ای گوم بده مینا شده شزبان گو گو گای توپور، ای گوم بده مینا شده که داره به دنیا استین از طریق بی خطر نشأ في رف موسى، إنك رف موضع، إن خليله موت من، إن خليله موت بار، ها إنه عب نو المتي، أم فاقم يدل بصر، إن خليله موت من إن خليله ها إنه عب المتين المتي أم فاقم يدل بصر إن ایدال دست ایدال دنیا شده شده شده خب من یه اصخایی ویژه دارم خیلی شما بینندگان عزیز و عرجمندمون به خاطر این مشکل ارسال تصاویری که به قم از مشهد به قم بود و دریافتش از قم به مشکل خورده بود خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی ببخشید ما رو اینشالله که متاسفانه این مشکلات هم که پیش میاد ما از پرمکار میمونیم نمیتونیم پرمکار پاسخ بگیم در همین حینی که شما بزرگواران منتظر ما بودید و برنامه قاطع شده بود تماس خیلی زیادی رو من پاسخ دادم اینجا گفتم پنج دقیقه دیگه اون عزیزانی که تماس گرفتن در خدمتشون هستیم اون بزرگایی که من رو چون آخر ازشون رد کنم ازشون سفارش می‌کنم ازشون از ایمیل دادن فراموش نکنید مشهد ولایت از ولایت تیوی دات کام مشهدعثان دات کام بهترین و راحت ترین راه برای به پاسخاتون هست فردا همین م... ساعت این برنامه ساعت یه تکرارش هست شنبه هم که ساعت 19 و را جواب سه دیو تلفن و یک و و و نویس شما از دان هستن خب اما یک سال دیگه میپرسم بعد می میگه سراغ تلفنها فقط اینو لطفا زود و سری بسین پاسخ شه ببینید فرگا خانم از امریکا همین الانم با هم تلفنشو میگرفتیم اکزما دارم و در حال حاضر تبدیل شده با آکنه هست این که این بیماریشون میخوام ببینم چی می چی می سبب چیزهایی که تشدید میکنه اینها رو ساخ كردنی تفتادنی بودادنی اوسانسای شیمیایی اینها رو تک میکنید چیزی که تسریع میکنه در بهبودی اگزما و اکنه شما لیمو شیرین شبها با شامت یا قبل از خواب میخورید اسرانه یک لیوان آب انار شیرین فصلی که نبود خودتون آب بگیم فصلی که نبود یک قاشق پلو خوری رو به انار شیرین رو میتونه همجوری بخوره میتونه به همراه آب بخوره خب خیلی ممنون آمقا متشکر قبل از این تماس اول رو دوستانمون بست کنند به من من یه نکته دیگه بگم که ۳۵ ده شماره پرمک ماز پرمکتون رو بزنید اگر خودتون ایمیل ندارید دوستانتون اطرافیانتون آشنناهتون اگر ایمیل آدرس ایمیلشون بگیرید انتهای پرمک تون آدرس ایمیل رو درش کنید افتتصاه پرماکم یا آین سلامتی یا سلامتیشون به حال اون کاریکتر میخواید زیاد نشه آین سلامتی یا سلامتی رو بنیسید که خود نکرده با پرمک های کانومیر قاطی نشون میرونم سراغ ابریم پرمک اولی تماس رو سخواهی میکنم سرکار خانم ایزادی هست اسفان دوستان هم تا پرمان بس کنم تلفن پاییم خانم ایزادی رو که در خدمتشون باشیم خانم ایزادی از اسفان من منطقه تماسشون هستم که بس کنیم بر ما فعلا. خانم ایزادی سلام سبیه جهانی ولایت بپرمان سلامت باشین متشکرم. اصلا واسه خلاق ها هم سلام م... م... من مراجعه کردم برای نازایی به پای دکتر. بعد من گفتن که رحم دو شاخه داری. بعد گفتن باردار بارداری ولی ممکن از بارورت بره ولی اصلا من باردارم نمیشم نمیدونم حالا باید چیکار کنم چه بزیم قضاای باید داشته باشم. بعد من گفتن یا خالی کن گوش داشتن نخور. بعد من يا خالد به من گوشت گوشم اصلا نمیخوام ولی هنوز جواب نگرفتم حالا نمیدونم چه کار کنم چشم... جواب اجورا قطعاً میشین متشکرم اصلا ممنونم سرکار خانم حاجیان از اصفهان از که امروز باز بینندگان ما اصفهانی هستند سرکار خانم حاجیان سلام عرض میکنم خدمتتون شبکه جهانی ولایت بپند خانم حاجیان سلام سوی که جوانی بلایی شما هستیم بفهم سلام از من ممنون حاج میخوام ببینم داروی استرم سیف باشه متوجه بر داروی برای چی؟ استرم باشه من متوجه شما استرستتون؟ نه اسپ نطفه مرد اسپ باشه خوب اسپ نطفه مرد باشه نطفه پوکی و با... با... با... کمکونیتا من شاهرم رویش پنج در شده میخواد اونم نم... ببینم چیه خیلی خوب پس شما دو سآله شده یکی در مورد اسپ سفره یکی هم در مورد پوکی و استخان رو دکتر درسته او... یکی هم درسته دیگه همین تن... ده... ده... شده درست تو قایه مداوم داره و اینا متشکرم ممنونم قبل از اینکه من تماس بعدی رو بگیرم بله بله از تلفنشون نگاه بدید قبل از این که من تماس بعدی رو بگیرم دوستانم زوجوار نازنین من یک دونه سوال یک مشکل یک بیماری الانم دوستان من می‌خندن ببینید این به مشکل داره بخوام هر کسی 10 تا 5 تا 6 تا 3 تا سوال بپرسه بعده نمی‌تونی پاسخ خوب باشی سارکو خانم علیزاده از فار خانم علیزه سلام ارزم هم خدمت سوشباکی جهانی برد بفند خانم علیزه سلفانشون قطع شد آیه کازه این مشکلی که قطعا اطرافیان ما به مشکلاتی دارن ما شما که تماس میگیرین یکی از مشکلات رو بر بار اول انتخاب کنید دوباره تماس بگیرید دوباره مشکل دوم و ثبوت رو بگید خانم حاجیان رو ها ما سرمی کنیم اون مشکل اولشون رو مربان کنیم اگه تماس می خانم بفهمین یا آقای فهیمی آقای فهیمی از تهران خطشون رو وصل کنیم برای ما آقای فهیمی سلام شبای که جهانی ولایت در خدمت شما هستم سلام علیکم سلامت باشین بزرگوار محمد توم هاالو بفهمین بزرگوار شما سلام علیکم متشکرم فارس میکنن آجاها دستردن بله حاج آقا شما میشتمون داخل من مشکلمون در کاناداست من نون مشکل داره بله وارد نیستم زیاد بگم که دقیقا چه. بله بله هرچه ما زحمت میکشیم که شما رو بگیریم نمیتونستیم این بروز خوشبخت دارم من بلوز خدا گرفتیم ما اگر این شماره تیلپونو من به شما تقدیم بکنم شما میتونیم با مادر اون تماس بگیریم آره مشکل نه من اتاق فهمنه خط شما رو میگیرن آره من ردیری به من بدید شما خط روی خب این هم آقای فرمی هم که مشکلشون در کانادا بود میخوایم با پاس سه تا سوال بود آقای خانم دینیپور از کرمان شد خطشون رو کن آخرین تماس این دورمون باشه خانم دینیپور سلام عرض میکنم خدمتتون شبکه جهانی ولیت به تمت خانم دینیپور الو سلام ن من تلفن سلام عیکا سلام سلامت سلامت در مورد مده میخواستم سوال کنم خانمی هستن هشتاد ساله بله که ایشانقطچه که غذا قضا میخورن غذاشون زیاد هست نمیشه بله. تبدیل به خلت مده میشه بله. و سوزش مده دارن و احساس میکنن که غذا در ابتدای مده با هست و گیر میکنه یه همچین حالتی دارم درست مثلا اگر پیاز خام میخورن پیاز خام باعث میشه معده ایشون بسوزه و تا توجه به سنی که دارن خیلی مهمه قصد درد جذب درد رو برای ایشان درسته درسته. میخواستم اگر ممکنه دارویی که لازم باشه و در دسترس باشه بله. برایشان برای معرفی بکنید درد, درد مده, درسته. مده درسته. که ندارن خانم مدین بابا دینپور دینپور خانم درد معده که ندارن درد میده نا نز... چرا درد معده داره درد معده بعد سال دیگه هم. مرسی از تماستون ممنونم متشکرم ان شاءالله که خداوند بهشون شفای کامل رو بده یه وقت خط رو شروع شده امروز خدا خانم ایزدی از اصفهان گفتن که مراجعه هم برای نازایی گفتن رنگشون دوشاخه است و راه حلی میخوان برای درمان یه مداتم گیاهخوری کردن دیگه این اینجا گوشت ذرا غوصفن سردست گوصفن ضرری نداره. در هفته یک یا دوبار بخواهند دوبار این که تو جیره قضاییشون هر روز هفت برگ کاسنی یک قاشق مرب بخوری پودر کاسنی یا یک استکان عرق کاسنی طبیعی باشه تا تختان فعال بشه طول عمر تخمک ها بالا بره انتظار تخمک رسیده که توسط شیپور پالوب گرفته شده ابتدای لوله رحمیه منتظر واقعی استام شوهر باش حالا اگر این شوهر ریش تو چاره مشکله من یکی دیگه یکی دیگه او حالا چیزایی که تختانت رو ضعیف می‌کنه و طول عمر تخمددت رو کوتاه می‌کنه و یا کیست تختان و یا فیبروم رحم اینجا کافئین زیاد و اسانسای شیمیایی نخورند درست این چای پرنگ، پر چای مونده، چای با اوسانس، قهوه، شکلات، کاکو مسکافل، شابه های گازدار، آب میبایشی میایی نخواهد تا نطفه زن ضعیف نشه، تختان ها کمکار نشه کیست تختان نشه درسته. حتی بعضی ها ورن تختان هم دیده شده بحث نفریت، ورن تختان اونجا هم باز درمان های خاص خودش رو داره ولی فعلا همین مقدار کافیه دوست. حالا پیشی متخصص زنان و زایمان میره یک چکاب میشه حالا این آیا داخل این رحم هست یا جدا از رحم انتهای واژن یا انتهای لوله رحمی چون جای جنین جای دیگه این میچاست بعد اینجا حتما دیگه طبق نظر این جابجا جا میشه چرایی که خودمان بهشون فرزنید ساله ما ساله ما حاجیان از اسمان ست ساله شاید من نمیخوام ستاری بپرسم چون میخوام قانون اون سرجهش گفتن داروی برای اسپرم صفر اسپرم حالا اینجا باید ببینیم آیا مثلا بهیزه های این شوهر کلن تولید نداره این یک مشکل که اصل بیزه خرابه مثلا فرض کن این بیزهاش داخل شکمه و نزول بیزه در کیسه بیزه نبوده و این پدره مادر احمال کردن تا بعد از بلوغ و تا وقت ازدواج چه یکیش چه دوتا یه بار دیگه هست ها... نه این پیچخوردگی شدید بیزه است یعنی بیزه سالمه تولید اسپر میکنه. ولی پیشخوردگی شدید بیزه است. اسپرما رد نمیشه استلاح میگیم بیماری واریکوسل داره اینجا پیشی متخصص دستگاه تناسلی میره عمل میشه این پیشخوردگی باز میشه یک بار دیگه است نه تجمع مایه اضافی بافتی زیاده بین پوست بیزه که کیسه بیزه میگه و خود بیزه و فشار میاره به این مجرایی که از بیضه بیرون میاد که لولای اپیدیدیمی لولای دفن بعد اینجا میگیم هیدروسل حالا بعد این تجمع مایعات اضافی بافتیشو این متخصص دستگاه تناسلی باید دربیه پس اینا موارد مختلفه چرا چون اگر بیضه سالم باشه ولی خروجیش بسته شده باشه اینجا جا عمل ریزخاری انجام میده یعنی تولید خودش رو میخوره چه عمل فاگوسیتوست به خاطر اینکه این پیش نیار باید واریکوسل و هیدروسلش رو درمان کن یه با دیگه نه تنگی جنتیکی مجرای دفرانه یا نه اسپرماش جهش نداره اونها هم عقینی میره پس حالا اینجا تو بحث ما که میگه اسپرمش صفره بعد ببینیم اصل بیزه تولید نداره یا تولید داره و خروجی نداره خب میشوند که ایشون هم مشکلشون درمان قطعی که صد درصد باشه نداریم دینی دینیفور از کرمانشاه گفتم که سرکار خانمی هشتاد ساله میدهشون درد میکنه هرچی غذا میخورن غذا در صورت کامل هرز نمیشه و خیلی میده دارم اصلا که مثال زنبایم پیاس که میخورن میدهشون نیست. اون مال افضایش اسپرم سوال قبلی مال افضایش اسپرم و میل جنسی شکوفه خرما هست یا اگر بیزش کوچیک بخویم حجیم بشه بزرگ بشه باز فعل شکوفه خورما هست ولی به شرطی که اصل تولید داشته باشه و مجرای خروجی سالم باشه یا مثلا کاسمی هست که اسپرم رو زیاد کنه در مرد اونایی که قبلا گفتیم اما باید اول اون قشنگ دقیق به وسهس مال این حضرت خانم که 80 ساله باید حجم قضا کم باشه قزای سنگین نباشه قزای چرب و چلیست نباشه قزاهای تند و تیز و نفاخ نباشه چون هر کدوم از اینها باشه ها سردل، سرسوزه، ترشا، تخمه و حتی ریفلاکسش برگشت اصیر میده بمریش بیشتر میشه خب اینایی که بده نباشه اینایی که خوبه مثلا بعد از قضاش یه استکان آف تازه بخواه قضاش کم باشه از نظر حجمی سنگین نباشه سقیل نباشه ولی تعداد دفعات غذای میتونه زیاد کنه دست. مثلا اگر یه نروکی خور میتونه اینه 6 بخوره 6 تا وعده میخواد سه بعد بخوره سه بشکه کم کنه احسن. دفعات مصرف رو ببره بهتر این احسان آفر دوم اینکه این غذاهایی که اساسه شیمیایی ها اگه نخوره اسمو شابای گازدار دوخت گازدار حبیاتم با این سنشون قطعا چیز براش بله خیلی براشون ضرر داره چون گای نو نتیجه ها میان تعارف میکنن به مادر بزرگ عمه بزرگ خاله بزرگ این هم میخواد دل اینا نشکنه یکم لاخونک میزنه از این پفک میخوره از این یکم چیپس میزنه از این یه دونه اسمارتیز میخوره حالش بد میشه یه خونه داماد عروسش رفته حواسش نیست مختزی سنش هاجا توخموماب به کوکو میخوره م. حالا فرض کن شامم دیر باشه بسیار حالش بد میشه اون شب تا صبح خوابش نمید پس باید موازب خوراکش باشه سننای بالا میان سالی کوهن سالی مخصوصا باید موازب خوراکشون باشن اکثر از سالمان مریض نیست حالا اسلام ولایی چهار تا مطلب داره یک خورمای تازه رسیده روتر دو خورمای خشک سالم بهداشتی مثل تمر برنی یا صرفان یا مشان سوم خربوزهی رسیده سیب خورما از روتب غیر روتب یکی هم رسیده این چهارتا حاجبا چند خوبی داره حالا تو مباعثه ما کمک به هزم قضا میکنه قضان. حالا هر کدوم از اینا در خونه موجود بود ایشون بعد غذا یه چندتایی بخوره دلست. مثلا سیب بود یه دن سیب رسیده شیرین معطر آب بود نه آبشه بخوره بله سنای دلست. بالا آبشه یه استکان آبشه میخوره خیلی فواید داره کمک به هضم غذاش میکنه سرسوزه مهدش خونسار میکنه خورما بود خورما بود طبق این سن از یک عدد تا سه عدد بیشتر نه بیشتر نه خوره. یه بار جوونه یا میان ساله میگیم تا حرف عدم مثلا اگه خربوزه رسیده خوب بود یه قاش خربوزه تقریبا میشه نصف بروش امه. یه قاش خربوزه نصف بروش کافیه اه. مطلب دیگه اگه خورمای خوش بود همجور اگه بهترین گفتیم ها. مثل صرفان بعضی مناطق مشان دلسته. بعضی جاها ها زاهدی میگن درسته اونی که از یمامه اطراف مدینه هست تمر برنی خورمای خشک رسیده سالمه برنی اینم تو روایات سپاسگزارم. سپاس من عجله می کنم به بتونم تماس دیگر رو داشته بشیم تماسی بعدیمون رو, رو روی خطهای های سپانتر یاده. دیویستو بیستو و یک پنجه رویسته دیویستو پنج و خلیج جنوب جنوبی‌ترین نقطه ایران است. خانم صادقی سلام عرض می‌کنم تو اون خیریه جهانی ولایت بفرمایید. خانم صادقی لطفاً گیرندتون رو ببندید، بذارید من فقط از تلفن داشته بله. بزرگ بله شما، بفرمایید ما صداتون می‌شنامم، سلام علیکم. سلامت متشکرم. صادتون... بله، خدا سلام باشین. بزرگوارید کنم. پخش میشه داخل مسجد. الو. صداتون بله خانم سارا سوالتون بپرسید. سلام علیکم هاجق، خیلی خوشحالم. بله درست می من از جاییی خود دارم به صحبت میکنم. تقریباً یک ماه پیش یه درد صورت و فک گرفتم، درد شدید. باید. بعد گفتم بابیر مغز و اعصاب، مغز و اعصاب که رفتم گفتن که مریض نورولوژی گرفتی. بعد گفتن که باید حتما ام انجام بده. ام که انجام دادم رفتم پیششون بعد از سه هفته یه سری قرص اعصاب به نام گافانتین من خوردم. آیه صفاتم بیچاره می‌شدن با آمپولایی که تو سرم ریختن، دردام ساکت شد، دارویی که داشتم. که گفتم مریض نرژی بعد حالا تو ام‌آر‌آی سه سیتولاک چه بهشون گفتم ایلاکا چه؟ گفتن لاکا خونه. حالا دوباره مجددا یک مادی من دوباره ام‌آر‌آی ببرم. می‌خواستن ببینن چه ایلاکای خونم چی رو برطرف میشه که تو مغزم هست. سه تا نقطه. الانم بعد از یک ماکی داروار خوردم، یه درد خفیف سمت راست تو دندونام هست. بعد با انگشت فشار میدم به یه درد داره گزگزم میشه. او راست بعد بهتون میگم من دیابت دارم، اینو هستم. او یه سوالم الان من چقدر وقتم خواهم شما میگم با مشکل با خودم که ذره موی زائد زیادتر داره برای کمرش و سینش خیلی اذیتش میکنه. بعد گفته که شما گفته تخم مرچه خب ما تخم و چی نمیدونیم چجوری به دست بیاریم؟ روش دیگه دعای نازنین داری. باشه. حالا من این مدرسه امروز می‌کنم هم... بخاطر دادن نوازش خیلی ازت می‌دارم بکنه. انشالله تو خودشون. اگر من کار نکنم، محتاج می‌دارم. محتاج می‌داری؟ امروز شما تعلیم داشتی؟ خانم نازمی از مشهد بوده خط هستن هستند دوستان از دو طرف همون کاتیشون رو هم بریم ما باید کن. لطف کنید بعد ای که من خلاصتر تشرک از خانم صادق بخاطر تاماسشون خانم نازمی سلام شاید یک جانی ولی به سلام. سلامت باشین بفرمایید. الو. سلام. سلامتون دردم. سلام، وقتتون بخیر. جونم. سلامتون دکتر من سلامتون میشه. بس من در مورد بزرگم بگم. ایشون اا خونشون اون 250 است بعد فشارم داره. از قرص فشار میخورم. میخواستم باید چه رژیم غذایی داشته باشن که این چربی خونشون بیاد پایین. انشالله که مشکلشون حل بشه. از برای رژیمشون رو همیشون سوال کرد خط بعدی رو من نگفتید بس کردید خانم حسنی از خراسان جنوبی از همسایگان خراسان رسد سلام خانم حسنی شوایق جوانی بلایت بفهمت خانم حسنی مخموم سلام نکم سلام, سلام. سلام بزرگ باید چا بفهمت ببخشید از کارشناس هست محترم سوالی داشتم خانم حسنی 25 سالی بله بعد تقریبا 7 ساله که بیماری سرد دارم بله بعد الان هفت ماهی باردار هستم و داروی باردار سودی رو میکنم. می کنم ببینم که این دارو روی جنینم ذره داره تاثیر داره یا نه. می خواستم نظر کارشون رو گرسم مترکرم از تماسیتون انشالله که فرزندتون سالم و صحیح و سالم و صالح به دنیا آقای محمدی از کرمان در خیمتشون هستیم آقای محمدی عرض سلام دارم خواستتون شارک جهانی ولایت بپرم سلام آجام سلامت باشین متشکرم بفرمایید. حصه نشدم. متشکرم بفرمایید. بله. حجی مشکل داره سمت چپ بالای سینه. بله. شما کنم که اصلا عکس گرفتم اینا کم حالت عفونت داره صبحم خط از سینه میاد اینا. بله. خونم وقت بعد از بله. خیلی خون روشن هست بله. اینا. بعد دارو اینا خودا اثری نکرده. بله. داغرش وزنی 16 کیلو از پارسا کم شد باشه شما است جوالتی داره پول صدام داره داره داره دیگه هم هست یادتون فعلا الله که خدا من به شما صفام دفعه یه سوال این که دخانیات مصرف می‌کنی نه نگاهی بس یه سیگاری شما اخیری به خودت رحمت نبواتون شما وقتی می‌دونم همون یه وقت گاهی یه روز یه سیگاری وقتی بکشم مطمئنم از تماستون ممنونم من خب چهار تا اون موضوع خیلی خلاصتون خطا داره خیلی خلاصه ببین چهار تا بپرسید بعدی از مشکل نورالوجی داشتن درد فرق و صورت گرفته بودن و اون مشکل لکه های در اصل بیشتر تماسشون به خاطر اون لکه های خون امارای سرشون بود ما از مردم بزرگوار خطوط مرزی ایران مخصوصا جزایر خلیج فارس کمال تشکر میکنیم هم در قدیم هم در جدید که دفاع از خطوط مرزی کشور ولای ایران میکن شما شاء الله که سالی که فرمودن سونبالاتین با عسل یک قاشق چایخوری صبح میخوریم گل ساعتی با عسل یک قاشق چایخوری شب میخوریم هم سوال این بنده خدا هم سوال بعدی ما در وجودتون چربی خون دارن جا. یک سال دیگه بود عصبی بودن ها سر دارن بیماری شما. سر باردار اون... هم هستن هفتنی احسان اون حضرت خانم همون حضرت خانمی که باردار هستن و سر دارن در حین بارداری و سر و همچنین این خانم که لکم داشتن در ضمن یک دو تا دیگه هم در ضمنش بیان فرمودن اینها حتما باید اصل رقیق شده صبحگاهی آبسیب شامگاهی بخواند و با نهار شامشون چند برگ کاهو بخورن که هم سیستم دفاعی بدنشون تقویت بشه هم خون ساز باشه هم تصفیه خون بشه هم حرارت داخلی کاهش پیدا کنه این حضرت خانم اول که سه تا لک تقریبا داشتن ما باید این لکه و لخته های خونی پاک بشه اون غقیق بشه طبق خاصیت مؤینگی اسموزی جذب دستگاه گردش خون بشه اونجا باقی نمونه درست شد تا اندام حرکتیشون دوچار مشکل بشه تا عصب فک دوچار التهاب بشه و درد شدید این قسمت بشه نظیر کسانی که فکشون در میره و عصب درگیر میشه اینجا دارو این بزرگوارم گفتین حالا چون اون سالو گفتید اون سرکار خانمی که باردار بودن یه دارو مصرف می‌کنن فهمم دارو حتما. اون دارو رو حتما باید, باید, باید. باید زیر نظر متخصص زنان و زایمان باشید واس دیگه واقعا متخصص مغز و اعصاب یا متخصص اعصاب و روان خوبه کافی نیست حالا که باردار هستین این داروتو باید میشون بدید به متخصص زنان و زایما اگر گفت برای شما و برای جنینتون zarar نداره حالا ادامه میدید گاهی میبینید دوز دارو رو کم میکنه ولی این شخص باید عفونت تکرار نشه تب تکرار نشه چون در بیماران تشناجی و سرعی هر بار که تب و یا افونت تکرار میشه تنش عصبی شدیدتر میشه خانم رضا از سل شده صبحگاهی آب به شامگاهی گذاشتند خانم نازمی از مشهد در مورد مادر بزرگ از گفتن که چربی خونشون 250 است فشار خونم داره فشار خونشون رو با مصرف قرص کنترل میکنن برای رژیم چربی خون گفتن حالا بله غذاهای دیستر... چرب و نمیخورید فعلا برای مدت چند هفته فقط روغن زیتون تمام غذاهاشو بدون روغن درست کن یک قاشق روغن زیتون با نهال یک قاشق روغن زیتون باشام بس بعد حالا چربی مزارش مثل کلسترول بدش تری گلیسیریدش اینها بیاد پایین یک قاشق خوری شیвит میخوره با دوغ شیرین کمچرب چرب یا ماست شیرین کمچرب چرب به همراه غذا یکی هم یک عدد کدو مسما کدو خورشتی هم مثل خیار سبز یک عدد کدو مسما متوسط تو چه ساعت یک بار میخوره با پوستش این سریعا تیریگلیسیرید خونش هم پایین میاد حاجه ها شده که ایشون هم حتی سلامتشون رو داشت بلانا. های محمدی از کرمان ریشون مشکل داره سمت چپ بالا رو مثل که اکس هم گرفتن حایت او داره و هر روز صبح با صرفایی که الگرد اندارن خون رو در دمشون ایشون باید سه چیز رو رعایت کنی یک اصل وقیق شده صبحگاهی رو با شیر تازه گاو کم چرب. با شیر باید بخور سیب شامگاهی رو باید با اصل بخوریم یعنی یه لیوان سیب تو یه قاشق پلو خوری عسل توش هم بزن بخور و های روز یعنی بعد از نهار بعد از شام باید هفت عدد خورما بخورید چرا؟ چون در میبه خورمای رسیده چه تازش که رطب باشه چه خوش شده سالم بهداشتیش که تمر باشه عربای های میگن تمر علاوه بر مواد مفیدی که داره و یه غذا و, و قضیه کامله لعاب یعنی مسیلاج داره کسایی که خلط خونی دارن در درمان خلط خونی هم مفیده ازا بعضی از محققین ما که حضرت خانوم هم هستن مثل سرکار خانم فاطمه اکبری در کتاب میوه درمانی داره المعارف میوه درمانی نگاه کنن تو قسمت خورماش همین مطلب رو داره آمد. کتابای متخصصین دیگر هم تو میوه درمانی مثل دکتر محمد صادق روشخان تو بحث خورمه هم مطالب ای داره پس خلت خونی درمانش با چیه؟ مصرف مسافت خرمای تازه راتا به رسیده شیرین یا خوش شده بهداشتی سالم دوست. بعد, بعد هر قضا از خود شما رو آره اصلا همین عدد خرما رو شما گفتید که به خود مشکل نداره اصلا احسن. همین مردم هم بعد, بعد خیلی فواید داره ها بعضی بعضی آدما بعد از غذا حالا شیرینی می‌خورن یا شیرین می‌خورن برای هضمش کمک کنه فکر می‌کنم بهترینش خرمای باشه اون اون ها کپیرایت از غرب و شرقه مهم. که میگن مثلا پرخوری شخصو بخوایم درمان کنیم میگیم بعد در غذا یه دونه مثلا زبون بخور زبونای شیمیایی است شیرین یک یه شکلات بخور نا عوارض سو داره راحت یه دعدد دارش نمیخوام میگه بسیار بده حاجا وضع معدش به هم میزنه اما هم بهترین همینه که دین میگه حاجا فواید مختلف داره خود خورم خیل بله بله کمک به هضم قضا میکنه حاج اصلا بعضی سوال سآل میکنم من تین این سآلات شریف شما اون هفته های مثلا میگه آقا ضعف عزلانی دارن این کمک حتی عزلات ارادیم خوب کار نمیکنه بهترین داروش مسرقه همین به خاطر یه سری املاح و فلزات مفیدی که درش هست بازم تو کتاب های علمی هست خیلی ممنونم به هم گردیم به تلفن های تلفن های 11 22 25 41 69 22 25 41 53 22 25 که پاسخ خودشم و حضوری هارم سرکار خانم نادری از اصفهان تماس گرفتم پشت خط هستند خانم نادری ارزو سلام در خدمت از سنون جهانی ولیت بپرم سلام داشته ترخش شده خواستم بپرسن که من جده داشت دارم شش ماه پیش تصادف کرده بله موقع بله نخ فشار اومده و م... بهش کمرش ولد شده و از کمر بله. پاهاشه یه هی که نداشه بله الان براستی زیاده از که کرده پاهاشه کم حس اومده تا موچه پاهاش ولی از موچه پایینش حس نداره پا نم... حس داره ولی نمیتونه درست رو زدین بذاره با اثار را میره درسته ولی اول بی اختیاری اضرار مدفوع داشته ولی الان متوجه میشه که اضرار داره مدفوع بوده ولی نمیتونه بله. خود لطفا گوش کن که نا چه کاش کنیم ان الله که خداوند شفای کامل به این جوان بزرگوار بده بش شفای شما برگردان چه طور فلکه تو کمرش الله کمرشون بله تو, تو کمر پشت داره درسته کمرشون چه طور فلج شده بله متشکرم از صحبتتون ممنونم خانم لطیفی امشب اصفهانی ها خیلی تماس میگیرن اکثر مخاطبای امشب ما هم خانم هستم خانم لطیفی عرض و سلام دارم خدمتتون شبکه جهانی ولادت بپند <متحدث> سلام علیک سلام کنم بله میکنم خدمت سلام داریم بفهمیم سوالتون اه بله من دو تا دارم چهار ساله و مجرد هستم وقتی 70 بشازین کیسه تو دکتر کیسه توخ همه سمت راستو بله بعد بعد از یک سال میونپی بکن سمت چند بله وقتی شروع با در بیاری یا اینکه یعنی برایه ورشون نبات داد بشی یا یعنی اینکه برای قید حمید در بیرون از آه، آه. آه، این بایده می که میکنه یا میشه هم میشه بهشون بریدون از تماستون ممنون آقا کوهی از همدان چه عجب یا آقا برنامه یا آقا تماس گرفتید آقای کوهی عرض سلام دارم خیلی آقای کوهی شاید که جانی بلایت بفهم باشی باشیم شاید که گفتم خدای بزرگ باشیم هر کندس سال دوست داری برادر به پرسش نه من ماریجی سه ساله چیکار متوجه نشدم میگم الان من ماریجی هم سه ساله بله بله سه سال زمینگی الان نمیتونم حرکت کنم بله میتونم حرکت کنم ولی نمیاد زمین برم. شکار کنم می‌کنم الان؟ چش حتما الان یه درمان خوب رو هست. درمان می‌داره؟ بله که درمان داره اینشاره که خداوند به شما شفای کامل میدن و میتونید مثل قبلن صحیح و سالم راه برید. متشکرم از تماس‌تون آقای کوی عزیز، آقای زاهدی از بوشهر. آقایون بهشون برخورد. تماس‌هاشون زیاد شد. آقای زاهدی ارادان در خدمت که جوانی بلیت بفهمم. آقای زاهدی؟ بفرمایید. سلامتون دارین بزرگوار بفهمم. سلام علیکم علیکم السلام برادر بفهم علیکم شب شما بخیر متشکرم ممنون هاجقا مدرم مظرا من میخوام از اون بپرسم خواهش میکنم شماتون دارید بفهمید داخل استیدو سوزن که میشه من زانوام از خدمت داخل درد میکنه از پشت زانوی از داخل از اون دایره حساب دایرهی و گدی وسط هاجقا من سنم 58 ساله زانو هم از قسمت داخل درد میکنه کارم تقریبا کاری کشاورزیه درست. این داوری عزیز. بله. هاتون از پشت زانو درد میکنه یا نه؟ از قبل. اینجور که دو باید از قسمت داخل. دیگه نه قسمت بیرون پا. از قسمت داخل درد میکنه. درست. درست. درست. درست. برام هم داره دانوتو. نه نه نه. اصلا برام نداره. برم نداره. فقط درد میکنه. بله بله. انشالله که شفافی کامل پیدا کنید و ما بتونیم حاصل دست شما رو استفاده کنیم. متشکرم. ممنون از خب چهار تماس اون رو گرفتیم تا خب خیلی زود بتونیم پاسپورت بدیم حدود 15 دقیقه بندهای برنامه داریم که بتونین پاسونا یه فرصت تلفنی بیان بگیرن خانم نادری از اصفهان گفتن که بعد ازشون متأسفانه 6 ماه پیش دستکوف کردن عنای کمر درد شدن داخل کمرشون پیچو یورپلاک دادن بعد فیزیوتراپی کردن کمی حس دارن، اما اون حسی که بتونن کار رو بکنن و کنترل و رو مفهمم ندارن کامل. خدا ان همه مریضای اسلام رو شفای کامل عنایت کنه این در اثر ضربه شدید دوازده قلاف عصبی تو مهره های کمر هست یعنی از زیر دندای سینه تا استخون لگن توش نخواه نیست دوازده قلاف عصبی هست. در اثر تصادف شدید ها ضربه خورد الحمدلله رب العالمین که اینا قطع نشده الحمدلله رب العالمین سلول های بنیادیش تخرید نشده حالا بعد از ضربه شدید و حالت یه مختصر ایستی که در اندام حرکتیش بوده حالا کم کم داره فعال میشه طبق همون دستور متخصص اسکلت، ارتوپدی مفاصل یا فوق تخصصی مفاصل مومن طبق همون دستور چطور بشینی؟ چیجور جور وایسی؟ چی دراز بکشی؟ دوشکت چجور با زاویه باشه توالت که میری توالتت فرنگی باشه یا زیرش بذارن عوض هر جور که میگن درست باید رعایت کن بعد یه سری نرمشای خاص سبکی که میدن به گونه که مریض خسته نشه طبق نظر این متخصص. اندام اندام حرکتشو نباید چرخش سریع بره نباید بار سنگین برداره نباید کفش پاشن بلند بپوشه نباید خمشه به حالت رکوعی از زمین چیز برداره 16 دستور رو باید رعایت کن اون من باشه اون چیزی که گفته بودید داخل وان خمامی چیزی گفت بعد این به شرط دیگه این جای بخیه ها خوب بشه بعدش بخیه های داخلیش هم خوب بشه بعد آروم آروم مه. حالا میتونیم کمک کنیم به اندام حرکتی پاش که 30 گرم آویشن شیرازی بود میجو در بس. یه لیتر آب بعد آبش صاف می‌کردم می‌ریختم تو آب وان چل درجه 20 دقیقه این اندام حرکتی رو ماساژ بده ماساژ ملایم حرکت‌های کششی شدید براش سمه خیلی باید اینا با آروم باید مدارا کرد زمان بره، اما الان سیر بهبودی این بیمار هست یعنی روبه خوب, خوب شدن پس نباید ناامید بشه اگر ناامید بشه یا استرس فرش دادا دردای کمریش تشدید میشه درست التهاب میره بالا بعد کرخی بیشتر میشه اما اگر امید باشه به زندگی بهتر کما اینکه بیماریش نشون میده که رو به بهبودیه نمیتونست حرکت بده کی حرکت میده بعد یه مختصر انگشتاش دیگه مونده که کف پاشه قشنگ بذاره اینا زمان بره یواش یواش به اسطلاح میگیم آناتومی حرکت سعیه را آیت کنه زیر نظر متخصصه مغز عصاب یا جرایی ارتوپدی و تو بحث نرمش های صحیح که بعد از این یواش یواش میاد زیر نظر یک متخصص ورزش درمانی باید زیر نظر او باشه از پیش خود نباید حرکات سریع یا چرخشی یا کشیچی انجام بدن بسیار زرد داره جهستان بره تو مطرفی چیز خوراکی تو خوراکی آج روغن بنافشه خالص هم به صورت ماساژ ملایم بعد از این که ماساژ ملایم هم تو خوردن دردای مهرهیش کم میشه دردای مهرهیش کم میشه خب میشونه که ایشون هم تو شرفای کامل رو بگیره اونم لطیفی از اصفهان، اهل اسپانیا ام، شاید خیلی مخاطب برنامه ما بودن قصدی ندارم. یه چیزی تو بحث سلول های بنیادی، آخرین پیشرفت‌های علمی در مغز و عصاب خیلی مشکلی که ها جا مثلا جایگزین داشته باشی به ذا الحمدلله مال نرفته و داره اون سلولای دیگه رو ترمیم می‌کنه. اینجا یه ای خوشخبری بود که خدمتشو نگفت. که باز خوشحالیشون اتفاق افتاد. من از اصفهان گفتن که دختری هستن 44 ساله ده کیسه ده. تختان کیسه تختان سمت راست داشتن مثل اینکه اون رو برداشتن بعد از عمل که یک سال بوده سمت چپ هم مثلی که مشکل داشت دوشه روش گفته که باید حتما باردار باشن چه. چه؟ این بزرگوار اسانسای شیمیایی نخورین قضاهای مونده نخورین کافئین زیاد نخورین اینا علل اصلی ایجاد کیسه های تختان و پولکیستیکه حال اگر ادامه بده خب تو بعضی مواقع ورم تختان هم میاد دوست. چون کیست تختان ورم تختان اینا بیماری های برگشت پذیره یعنی اگر شخص بدخوری کنه باز بیماری عاد میکنه بهذا عمل جراحی درمان واقعی نیست بله اگر شخص رعایت مسائل نکنه پس اینایی که بعده باید ترک کنه حالا میتونه کیست تختان تختان کمکار ورم تختان چول عمر تخمک کوتا اینها رو میتونه همه رو درمان کنه حتی فیبروم رحم رو نازد کنه حتی چسبندگی لوله رحم کم کنه بب. یکی حجامت خاص قبلا توضیح دادم آه. که شنبه از دو طرف داخل ران حجامت پیش حجام زن برز دو شنبه از بالته هنشنبه از مهره آخر کمری که با لگن رسله یک بار این حجامت خاص انجام هر روز بعد از این یه هفته که حجامت خاصی یک بار انجام داد هر روز یه استکان عرق کاسنی طبیعی میخوره یا هفت برگ کاستنی یا یه قاشون مراب پودر کاستنی سوم، اگر بر کیست تختان و یا کمکاری تختان یا طول عمر تخمک کوتاه، حالا ورن تختان هم داره بس نفریت تختان درست؟ اینجا حتما علاوه بر این دو تا دستور قبلی باید بادکش گرم کنن بادکش گرم فرض کن مثلا این از ناف شخص به طرف پایین باشه زیر ناف دو نقطه بادکش گرم همراستای این کنار کشاله ران راست دو بادکش گرم همراستای اینا کنار کشاله چپ دو بادکش گرم اینا همه همزمان باید باشه بادکشی گرم یعنی این لیوان بادکش رو که اون متخصص زنان هست در عکس میکنه یه رو آغشتی میکنه به الکل تو بری اینو... آره یه دور میچ خونه خل میشه میگذاره. پس شیش تا بادکش گرم این چند نوبت که تکرار بشه اقا ورن تختان هم میخواه این ستا سبب میشه که از عقیمی خوب بشه، کیستاش خوب بشه و بقیه مسائل بعد هم که ازدواج کرد، تولید نسل کنه. ان آقای کوهی از همدان، خودتون که اول فرمود راست میگه ها، بلست. چه متخصصش تا خ... چه خودش که سنشون بالا بود، این چند سال بود بعدش ما از که سن بالا ازدواج دیر هنگام تاخیر افتادن سنه ازدواج سوء تغذیه اینا همه عقیمی میاره حرف درستی همه بله تو پزشکی جدید هم ثابت شده است که ازدواج قانونی شریع کنه بخت خوبی براش میاد بسیار کار خوبیه اما فعلا این بحث درمانشون به این سر. آی کوی از همه که خودش نمازه با تماس کنه مشخص که گفتن که ایشون ام از دارن سه ساله که ام از دارن نمیتونن هرکتون که ها شروع زمین در باره داشتیم در رابطه با دائرت المعارف پزشکی خانواده دیویدی هست 210 جلسه یکی از جلسات این دیویدی صوتی در رابطه با بیماری ام ایسه. بیماری ام یعنی تسلوب متعدد شرائین مغز که در 24 ساعت 44 8 ساعت در برز یا تا هفت دو ساعت مومن اینا دوچار دوبینی میشن یعنی هر چیش میشون هر چیش دو تا دوتا دوتا می‌بینه. بعد کم کم حاجبا حالت های لمسی کرخی میاد تو اندام حرکتشون دست و کم کم پا و کم کم حاجبا طور آرفتن مشکل پیدا میکنن و پاشون رو زمین میکشن اگر ادامه پیدا کنه کمک نکنه به درمان خودش حاجبا بعد خدا نکرده زمین گیر می باید مواظب باشین قلیظت خون نگیری اگر قلیظت خون دارید درمان کنید جلسات قبل گفتم مثل آب آب جوشه ولن عناب، زرشک خام آلو بخارا تمشک ریواس توزی دوم اینکه اگر لخته ای بود یا سلول های مرده خونی زیاد بود و یا تهال بدکار بود و یا کبد چرب بود و یا سفر و زیاد بود و لجن سفر زیاد بود اینا رو باید سریعا درمان کنه بله اینا رو مثل چی مثلا مومن؟ مثلا کاهو بدون سس با نهار شامش بخوره مثلا هندی با آب بخوره <متحدث> مثلا آلو بخارا 7 عدد یه درباره ام خیلی خواستم بگن یک ساعت از نظر پزشکی جدید و گیاهی و پزشکی اسلامی ممنون از کنم صوتیش هست دیگه. آقای زاهدی از بوشه گفتن که زانوشون از قسمت داخل درد میکنه و هم نداره 58 ساله نشون خیلی کوتاه این زانوها بیش از ده بیماری داره على واهر طبق این که کارتون کشاورزیه بار سنگین برمیداری یا کار بیل زنه تو تو زمین شخ بزنی یا بخواید درختی یا قرص کنی یا نشاکاری اما نمده اینجا زیاد رو زانوش فشار میاره زیاد روپا وای میسی هر دو ساعت کار ربع ساعت تا 20 دقیقه به خود استراحت بده بشین زمین پات دراز کن یکم ماساژ بده تا خود زیاد واید سادن یا فشار اضافی در اثر بار یا ضرب زدن حبا به بیر میزنه اینا اینا مفصل رو ملتهب میکنه اگر میشین پا میشه را میره صدا نمیده اگر کشش تاندون و مینیکس نیکس نداره اگر شور شدن ازاله چهار سر و پشت پا نداره اگر آب آوردگی مفاصل نداری اگر بیرون زدگی مای مفصلی نداری اگر رسو به اسید اوریتی خون به صورت کریستال یا بیماری نقرس نداریم اگر پشت زانواد آب نیورده ورم نداره یه محتاج به آمپولهای غیر استیرایدی نیستیم اگر مفصل تام خوشک نیست دیده همین رو نف کردم. پس چی حالا درد میکنه؟ سایدی مفصل هم آرتروز هم نداره اینجا بار سنگین حالت ایستادن زیاد ضربه زدن با پا ما گای در رانندگان عزیزم داریم مثلا پدال ماشینش سفت هاجگا بگو پروفسور میگم بله بله این زانو به شدت در میگیره بله حالا اینجا مهم باید هر دو ساعت رو به ساعت تا 20 دقیقه استراحت کنیم و سپس ماساژ بده با روغن سیاه دونه خالص که ضد التهاب آرتریت روماتوئیده التهاب مفصلی یا میتونه پمادای شیمیایی پیروسگام دی‌کلوپناک یا خارجیای کریم فاردیان که انگلیسی است قبل از کار بعد از کار استفاده آفرین. اگر ناحیه قلبی هم داره و درد زانو به این سادگی که توضیح بدم میتونه آمریکایی پمادش جینگای بله. ما مخالف با ال نیستیم ما با مساکه. ولی مومن ها خواستیم ببینیم که به ذا هر جایی می‌بینیم دیگه بردیم حالا ایرانیه دست خودت که از همه اینا قوی‌تره. روغن سیاه خالص این ماساژ میدین بیست در هر روز یک بار یا روغن بنفشه خالص که در پایی روغن بادام شیرین یا روغن زیتونه روز هم روزی دو قاشق پلوخوری و وسط روز آسان هم ماساژ بده درست این درد های التهاب مفصل و حتی درد های اگر در مناطق شرقی یا در جنوب کشور مثلا یا در شمال کشور بندر بوشه، بندر چابهار، بندر عباس جاست مثلا از یه حرفات جزائر یا شمال کشور مثلا چالوس و ساری یا آمل مثلا این حرفات اونجا هم شرژیه همین بندگان خدا دست و پاشون زیاد توابه توابه بله علایه بر اینکه مشکلات ایستایی زیاد یا بار سنگین هست که توضیح دادم التهاب مفصل آرترید روماتایی بله. این بزرگوار ها گایی روماتیسم های مفصلی میگ اذا توجیره غذایی هم سیر باشه هفته یک دونه اگر فشار خونم داشت میتونه فشارش بالای 16 بود هر روز یک دونه قرص بده مثلا. هم همومنا بهترین دارویه درمان روماتیسم های مفصلی و مغز استخوان چیه روغن نفشه خالص که در روغن بادام شیرین چشوندن این هم بوخود همومنا هم ماساژ بده خیلی برای روماتولوژی در آلمان انواع روماتیسم ها متراه. بجاکرم نه حالا چقد دیگه دوستان متوافقون به من اعلام کنن که چقد دیگه ذهاب برنامه داریم. یک 5 دقیقه. پس یه خط دیگه فقط میشین بگیریم می خانم رمضانی از یاسو که من گفتم باشه خط هست. اگه هستن خطشون رو واسط کنین وگرنه که یه... سخن انتهایی از خدمت از استاد داشته باشم. بله. خانم رمضانی از یاسو صحبت می‌کردن. خانم رمضانی از طالب در خدمت مشاور جهانی ولایت بفرمایید. الو؟ بفرمایید، چطور میتونم صحبت کنم، متشکرم. سلامت باشید، متشکرم. از با خدمت شما. من یه سوال دارم. این خانمی سی ساله هستم. من از برج چهار از ماشین که دادم خیلی بالا بود. یه ماه بعدش هم باز به همین شکل اون یازده بود، ماه دوم شد. شیخ الان این ما شده دو ولی خب من نشونه‌ای از اینو ندارم مثلا فرمونی و اینا رو واسه من راهنماش تو بارداری من چرا مشکل شدم با این قضیه اگه این قضیه رو من خلفیت معلوم صدق جنینم باشی داره؟ بله صدق جنینم بشتی داره؟ جنم صدق جن... جنینم جنینم خیر خیر من فقط یه که دادم تستوسترونم خیلی بالا بود صفحه. صحبت کردم با درسته متشکرم از خانم روضانی این نمیشه زیاد خانم رمزنی. ممنونم دوستان ادا فهام میان خط بست کنیم خب ما دو دقیقه بیشتر زمان 2 بیشتر زمان نمونده از اون 5 گفتید خب همین سوالا ایشون هم زیاد زمانتون میکشه خب بله با نخوره بله غذاهای مونده نخوره درسته کافئین زیاد نخوره درست. حالا ما هورمون مردانش رو کاهش بدیم، هورمون زنانه استروژن رو ببریم بالا. دوست. دو رو هم نداشتن. کافینده چیز میشه. یکی رازیانه که افشوره رازیانه. یکی هم کاسنین. خوب میشه اموجا. اما اگر این همه بیش از اندازه بالانس این بزرگوارایی که تو آزمایشگاه هستن از مرد و زن حواسشون پرت میشه. با هم گفتگو و دایلوگ دارن یادش میره که درست اینجا بنمیسه تصال فهمونیم؟ که این آزمایش شمارش اشتباه نشده قضا زیر نظر متخصص دوباره این آزمایش تکرار بشه اگر یقین بود که حتما تستستران یا هورمون مردانه زیاده حالا این دوتا داروشه روی خط بگیریم یه خط تا آخر هست من موز خود میکنم تما گذره که پشت خط هستن فکر میکنم زرک سرم. فقط سریع و خیلی خلاصه بفهم نا شیده من سؤال داشتم بله بله بعد من یک سال ازدواج کردم و من یک, یک پسر دارم بعد بعد از این پترم از آر حامله میشم باید صیت میشه باید معذرت من از غرمون روزی که باردار میشم یعنی لکه دینی خونریزی دارم چلست. بعد دل من درد میکنه چلست. پسش دکتر که میران دکتر میگه شما چفتندگی رحن داریم بچه هم شش ما شش ماه غونین ماضت مین نمود میمونه ملتی هم میم این صزاریان هم میشه مجاق خواهش میکنم از شما درمان دران راهم چفتان دیگه سییان مجکرت آون خیلی ممنون دیگه آخر تماس بود که که موج خودت پاسخ بوده اینا حاجقا با محلول آب سرکه قبل از بارداری هفته دوبار یعنی یه استکان سرکه سفید تونس و آب لگن بریزه 20 دقیقه توش بشین. هفته ای دوبار مثلا دوشنبه، چهارشنبه، یکشنبه، پنج شنبه. چه تا عفونت های پایین تنه ما نداشته باشیم از بیماری سفیدک و قارچی ما مونن. فقط یک دونه دوم اینکه هاجوا باید های مونده و فستفود فود ها، غذای صنعتی، اسانس های شیمیایی نخورن. خیلی مهمه. بعد چیزهایی که خونسازه باهمت. و اسید فولیک و فروس سلفات و آهن باهمت. خب حالا اینجا طرح جنریک که داروی ایران و طرح جنریک که داروهای ایران مطلب داره دارو هم داره خارجی اینها را هم میتونن قرص شیمیایی یه فیفول زیر نظر متخصص زنان و زایمان مصرف کنم معمولا این هایی که کم هم هستن و دلوافصی یا استرس نگرانی مستمر دارن این بچه ها جوا از همه اول لکبینی دارن به اسطلاح ما میگیم کمل لقه حالا اگر با استونم لاکاش پاک کنه اگر با مواد سفید کننده تیزاب وای تکس آب هم کنه اینا سخت جنین میاره اگر دارچین زعفران باقلا کاهو اینا زیاد بخوره سخت جنین میاره اینایی که براش بده ترک کنه کفش پاشن بلند دستشیر بکشه اول کماد یه چیزی برداده بچه جا کم این چیزایی که سخت جنین میاره ترک کنه بله. چیزایی که جنین رو رشد میده وزن میده رشد مخچه میده که نه چون اکثر سخت ماه دوم سومه در افونت های رحمی یا چسبندگی لولای رحمی شیش هفت ماهگی در وزن کم بچه، رشد جنین کم باشه، ماه دوم سوم حاملگیه. حالا اینجا اسفغولی که طبیعی، مثل لبو، 100 الی 200 کاهو که اینجا نباید زیاد بخوره، یکی خرفه. تو بحث ویتامین به 12 قبلا گفتم، گوشت قرمز گوسندی مخصوصاً زرع تو آم باامنا اصل وخرمه و آبسی تو تو من حتما این بحث یادداشت میکنم و هفته بعد اول برنامه رو با همین بحث شروع بحکن اندظره رو خلداافیکن چون انتهای برنامه هست. Yeah. من پنج دکترره خیلی خلاصه ب سری میگم اسقای میم که تون صحال میکن پرماکتون رو به شماره پرمک ۳۵۹ ارسال کنید ایمیل ما هم فراموش نشه مشد سا بلیت TVوی.com اییلتون بفرستین پاسخاتون از همون طریفق تونین دریافت کنید داخل پرماکاتتون هم اییلتون بزنید جااب بتون براتون ارسال می تکرار برنامه هر روز هر دوازده زور هست شنبه ها ساعت 19:30 دقیقه الی الاسع... از استاد ده... اینجا هستن میتونید سوالاتتون بپرسید سایت شبکه هم ولایت تی وی دات میتونید برید مراجعه کنید فیلم متن و صدای برنامه رو دانلود و پاسخاتون رو یادداشت کنید یک نکته خیلی خیلی مهمی که تو رو خدا خواهش می‌کنیم ساعت های غیر شنبه و چهارشنبه برای این سلامتی تماس نگیرید دوستانمون از اتاق فرمان التماس دعا که این تلفن ها مشغول نشه لازم دارم برای تماس های دیگهشون و انشالله که بتونیم خدمت کوچیکی برای شما بزرگواران انجام داده باشیم و تنها راه حل ما انسان ها این است که شاید با ظهور حضرت مهدی مشکلات و گرفتاری های ما رفت بشه اللهم اجل ولی کفرج ول عافیت و نصرت الله من خیر اوانی و انصار و المساشرین بیننده خدایا رو نگهدار